دوستان به درس امروز خوش اومدین. درس امروز ما رو به حقیقت بزرگ دیگری از کتاب مقدس میرسونه که همه ما نیاز داریم بشنویم، درک کنیم و در زندگی همون به کار بگیریم. خدا به کار گرفتن افرادی مثل من و شما رو دوست داره. به درس امروز با دقت گوش کنین. کارهای خارق العاده توسط مردم عادی، انجام میشه. این شما؟ و این معلم ما در ادامه بررسی عهد قدیم برای دومین بار به کتاب داوران رسیدیم در کتاب داوران ما روندی تاریخی رو میبینیم که هفت بار تکرار میشه اون روند تاریخی با ارتداد شروع میشه که به معنی برگشتن از موعظه‌ای است که با خدا داشتید اگر صفحه ساعت رو در نظر بگیریم چیزی مثل این پیش میاد در ساعت دوازده قوم اسرائیل خدا رو خدمت می کنند. در ساعت یک اونها مرتکب ارتداد روحانی میشن. و بعد در ساعت دو و سه اونها فساد اخلاقی و سیاسی رو تجربه می کنند. و در ساعت چهار خدا دشمنی برمیانگیزه. در ساعت پنج جنگی پیش میاد که در اون جنگ دشمن اونها را شکست میده و در ساعت شش اونها کشتار فجی و بردگی رو تجربه می کنن. بعد از گذشت مدتی در ساعت هفت اونها نزد خدا ناله میکنند در ساعت هشت اونها از گناه ارتداد توبه میکنند و در ساعت نه بیداری رو تجربه میکنند در ساعت ده خدا داوری برمیانگیزه و در ساعت یازده توسط اون داور نجات پیدا میکنند و به این ترتیب دوباره به ساعت دوازده میرسند و دوباره به بالای اون چرخی می میرسن و با خدا صادق میشن. خدا رو در اولویت قرار میدن و دوباره خدا رو خدمت میکنن. جالب اینجاست که چندین بار در یک برهی کوتاه از زمان اونها مرتکب ارتداد میشن. مهم اینه که یک دیدگاه تاریخی از کتاب داوران پیدا کنیم. مهم هست که به خاطر بسپاریم این کتاب دوره 400 ساله ای از تاریخ رو دربر میگیره. گاهی مردم به مدت حدود 80 سال قبل از اینکه که دوباره مرتکب ارتداد بشن، با خدا صادق بودند وقتی به کاربرد حقیقی کتاب داوران فکر کنیم، بهتره که این سوال رو بپرسیم چقدر طول میکشه تا ما مرتد بشیم به کاربرد شخصی کتاب داوران فکر کنید فرض کنید شما تعهدی میدید به بحران در زندگیتون میرسید و به خدا تعهد میدید و خدا رو در اولویت قرار میدید چقدر طول میکشه از تعهدی که به خدا داده اید دوباره برگردید آیا 80 سال طول میکشه؟ یا شاید میتونه هشت روز یا هشت هفته یا هشت ماه طول بکشه تا شما تعهدی که به خدا سپردید فراموش کنید به یک قوم فکر کنید چقدر طول میکشه که یک قوم مرتد بشن به یک کلیسا فکر کنید وارد کلیسایی میشید که واقعا کلام خدا و کتاب مقدس رو معیزه میکنه چهل سال بعد دوباره اونجا برید و ببینید که اونها چی موعظه میکنن چند تا کلیسا همون چیزی رو میکنن که چهل سال پیش یا هشتاد سال پیش می کردن. بنیانگذاران مذاهب امروزی مثل وسلی لوتر و کالوین و دیگر رهبران بزرگ و بنیانگذاران مذاهب را مطالعه کنید سرگذشت اونها و های اونها را بررسی کنید و ببینید اونها چی موعظه کردند ببینید به چی ایمان داشتند بعد به یکی از کلیساهای امروزی اونها برید و ببینید اونها چی می کنند. به این چی می‌گید به این ارتداد می‌گید بازگشت از جایگاهی که در ابتدا نسبت به خدا اتخاذ کردید چقدر طول کشید معمولاً 80 سال طول نمیکشه. خب در کتاب داوران اونها از این دوره ارتداد عبور کردند در کتاب داوران همونطور که گفتیم این هفت بار اتفاق افتاد بار اولی که این اتفاق افتاد اونها توسط کوشان پادشاه ارام مغلوب شدن و به مدت 8 سال به بردگی رفتند بعد خدا داوری به نام او برانگیخت، برانگیخت. او قوم اسرائیل را نجات داد و اونها در صلح بودند و به مدت چهل سال به خدا وفادار بودند. بعد دوباره مرتکب ارتداد شدند و توسط معابیها تحت سرپرستی اجلون شکست خوردند. اونها هجده سال این پادشاه رو خدمت کردند تا زمانی که خدا داور دیگری به نام ایهود برانگیخت. تنها چیزی که در مورد ایهود گفته شده اینه که او چپ دست بوده. ایهود قوم خدا رو نجات داد و اونها به مدت 18 سال در آرامش بودن. سومین ارتدادی که اونها مرتکب شدن منجر به شکست اونها در برابر یابین شاه کنانیان شد که سردار او سیسرا 900 عرابه جنگی داشت. بنی اسرائیل به مدت 12 سال در خدمت یابین بودند. این بار وقتی اونها نزد خدا فریاد زدن منجی اونها زن دلیری به نام دبوره بود. این زن شجاع ترتیبی داد که مردی به نام باراغ رو تشویق کنه که به همراه او بره تا به کنانیان غلبه کنن. باراغ به نظر میرسه که توسط این زن دبوره به زور واداره رفتن شده. اون به شما این حقیقت رو درباره خلع رهبری که اونها تجربه کرده بودن نشون میده. زن دیگری که نقش بزرگی در قلبه بر کنانیان داشت به نام یائیل بود. او سردار سیسرا رو به روشی کاملا استثنایی به قفت رسوند. چهارمین ارتداد سبب شد که اونها توسط ظالمترین قوم مدیانی ها مغلوب بشن خوشبختانه این فقط هفت سال به طول کشید اما این ظلم وحشتناکی بود ناجی این دوره جتعون بود او شاید شاخصترین داور در بین تمامی داوران بود پنجمین ارتداد سبب شد که اونها توسط امونیان مغلوب بشن که به مدت 18 سال بر اسرائیل ظلم کردند این بار داور اونها مردی به نام یفتاه بود که بچه اینا مشروع بود، مورد نفرت برادرانش بود و اونها او را مسخره میکردند تا اینکه امونیان بر اونها غلبه کردند. توانایی سپاه یفتاه اونها رو واداشت که با او از در دوستی دربیاند و با او پیشنهاد کنند که شاه و رهبر اونها باشه. خیلی از افراد در جامعه ما در زمان صلح هستند که کنار اومدن ما با اونها بسیار سخته. اما وقتی جنگ میشه، خیلی خوشحال میشیم که چنین افرادی رو در کنار خودمون داریم. یفتاح یک چنین شخصی بود. او اونها را از دست امونیان نجات داد. ششمین ارتداد و طولانیترین دوره ای که قوم تحت ظلم بودن مدت چهل سال طول کشید و سبب شد که اونها مغلوب فلسطینیان بشن. داور این دوره یا ناجی این دوره شمشون بود. خیلیها شمشون رو به خاطر دوست دختر او دلیل میشناسند شما داستان شمشون و دلیله رو میدونید اما شاید زمینه تاریخی رو که شمشون در اون زندگی میکرد ندونید شمشون یکی از داوران بود و یکی از ناجیان او بنی اسرائیل رو از دست فلسطینیان نجات داد به علاوه این هفت مورد بردگی توسط نیروهای خارجی بسیاری بر این باورند که جنگهای داخلی در کتاب داوران در دورههایی از ارتداد اتفاق افتاده اگرچه هیچ نیروی خارجی دخالت نداشت سه جنگ داخلی در این دوره 400 ساله اتفاق افتاد. یکی در کتاب داوران 19 تا 21 شرح داده شده که یکی از جنگ‌های داخلی بسیار بسیار جدی بود. کاربرد حقیقی دیگری که میتونیم از کتاب داوران به دست بیاریم مربوط به کاربرد نامه افراد هست. وقتی که کتاب داوران رو می باید از خودتون این سوال رو بپرسید: کاربرد حقیقی عملی در این کتاب از کتاب مقدس چیه؟ قبلا گفتیم که کتاب داوران میتونه کاربرد شخصی هم داشته باشه شما هم شاید از یک چرخه ارتداد عبور کنید این امکان هست که به یک بیداری نیاز داشته باشید و این امکان هست که عواقب وحشتناکی رو به علت این حقیقت که مرتکب ارتداد شده اید تجربه کنید شما در یک نقطه جایگاهی برای خدا در زندگیتون قائل هستید بعد موضعی متفاوت از موضع قبلی اتخاذ میکنید شاید به این دلیل که هیچ چیزی تکمیل نمیشه هیچ چیزی سر جای خودش قرار نخواهد گرفت تا اینکه شما به سوی خدا بازگردید و تعهدی رو که به او داده بودید دوباره تجدید کنید همینطور کاربردی قومی هم برای کتاب داوران وجود داره اون میتونه کاربرد وحشتناکی باشه که شاید بسیاری از اقوام بنا به تمثیلی که به کاربردیم اکنون در ساعت چهار قرار دارن شاید اگر این اقوام بیداری روحانی رو تجربه میکردند اونها از رنج بزرگی در امان میماندند عواقب وحشتناک و مخربی که میتونه اگر اونها مانند بنی اسرائیل در کتاب داوران عمل کنند بر اونها تحمیل بشه خدا نیروهای دشمن رو برانگیخت تا هفت بار اسرائیل رو در کتاب داوران شکست بده خیلی امکان داره که خدا یک توطئه المللی رو برای شکست قومی فراهم کنه و اونها رو به زانو در بیاره کاربرد شخصی و قومی اون اینه که ما نباید منتظر بشیم قبل از اینکه کار به اونجا برسه میتونیم به سوی خدا بازگردیم این کاربرد ضروری و ترسناک شخصی از کتاب داوران هست و علاوه بر های شخصی و قومی ارتداد در کتاب داوران شما کاربرد حقیقی زندگی نامه را هم میبینید. این اساسا از طریق مطالعه زندگی خود داوران به میاد. مطالعه زندگی این داوران و منجیان کسانی که قوم اسرائیل را از ظلم و ستم نیروهای خارجی نجات دادند یک مطالعه کلی در کتاب مقدس است. یادتونه که وقتی در کتاب پیدایش به زندگی افرادی مثل آدم، حابیل، نوح، ابراهیم، یعقوب و یوسف نگاه کردیم، گفتیم که بیشترین چیزی که خدا میخواد به ما بگه قصد داره از طریق زندگی این افراد در کلامش با ما درمیون بذاره. چون که او میخواد ما درباره ایمان بدونیم از افرادی مانند ابراهیم و جدعون اون با ما صحبت میکنه. چون میخواد که در مورد بسیاری از چیزهای مهم با ما صحبت کنه، به ما داستانهای طویل و عریزی درباره افراد میگه. بیشترین چیزی که خدا میخواد با ما در میون بذاره خلاصه زندگی نامه های افراد هست. ما برخی از اینها رو در کتاب داوران میبینیم. اولا همه این داوران در یک چیز مشترک بودن. این شاید اولین کار در مورد زندگی نامه ها باشه که ما باید در مطالعه زندگی داوران مد نظر قرار بدیم. اون کاربرد دقیقا اینه همه اونها مردمان حقیری هستند و در چشم دنیا آدمهای مهمی نیستند ما این رو در مطالعه زندگی موسی دیدیم و بارها و بارها در بررسی کتاب مقدس خواهیم دید این افسانه بیش نیست که فکر کنیم خدا مقدسین فوقالعادهای رو برای انجام کارهای بزرگ به کار میبره. چیزی که کتاب مقدس واقعا به ما میگه این هست خدا از این لذت میبره که افراد معمولی رو به کار بگیره و توسط اونها کارهای خارق انجام بده چون که این افراد در دسترس هستند وقتی این رو میبینید متوجه میشید که بزرگترین مهارت در پادشاهی خدا در دسترس بودن هست همه این داوران این رو به ما یادآوری میکنند تنها چیزی که باعث شد خدا دنبال اونها بره این حقیقت بود که اونها در دسترس بودند اونها توانایی های زیادی نداشتند اونها افراد خیلی ماهری نبودند اما افرادی کاملا در دسترس بودند بودن و به این دلیل که خدا اونها رو به کار میگیره. اوتنعیل اولین داور بود. تنها چیزی که کتاب مقدس در مورد او میگه اینه که اون نوه کالیب بود. آیا تا حالا به عنوان فامیل کسی معرفی شدید؟ من در خانواده بزرگی رشد کردم و در تمام زندگیم برادر پیتر وودوارد بودم. من هرگز اینو دوست نداشتم برای اینکه این به این معنیه که پیتر وودوارد ارزش واقعی داره. او کسی هست. اما تنها چیزی که این شخص میتونه اعلام بکنه اینه که فامیلی او با پیتر وودوارد یکی هست. آیا تا حالا کسی رو به عنوان خانم آقای جان بران معرفی کردید؟ شما جان رو میشناسید. او کسیه؟ خب این خانم هم خانم ایشونه. آیا این تنها چیزی که میتونند او رو معرفی کنند که تصادفاً با جان بران ازدواج کرده؟ این کار ناعادلانه ای که در حق مردم میکنن اما این تنها چیزی که در مورد این داور تننیل گفته شده گفته شده که او برادرزاده زاده کالیپ هست پسر برادر کوچک کالیپ است این مشخصه وطنیل هست هیچ هویت کاملی اونجا وجود نداره. تنها چیزی که در مورد ایهود گفته شده اینه که او چپ دست بود. امروزه میگند که اگر شما چپ دست هستید در آموختن کند هستید مخصوصا اگر دو دست شما سالم هست. جالبه که در عهد جدید گفته شده که پتروس چپ دست بوده گفته شده که وقتی پتروس گوش سرباز رومی رو برید گوش راستش رو برید معنیش اینه که او باید دسته شمشیر رو در دست چپش داشته باشه این تنها قابلیت ایهوت هست که کتاب مقدس راجع به اون صحبت کرده همونطور که قبلا گفتیم دبوره تنها مادر اسرائیل بود او خیلی سختی کشید تا باراق رو تشویق کرد. و وادار کرد که با او به جنگ بره وقتی جدعون ماموریت یافت که احتمالاً شاخصترین داورها بشه او گفت اینک خاندان من در منسی زلیلتر از همه هست و من در خانواده پدرم کوچکترین هستم جدعون خودش رو به عنوان ظریفترین افراد معرفی کرد این روند در سرتاسر کتاب داوران به چشم میخوره. همه این داوران افراد حقیقی بودن. این اولین کاربرد حقیقیه که می‌تونیم از اون برداشت کنیم من همیشه دوست دارم شما رو به چالش وا آیا شما خودتون رو فقط به عنوان شخصی عادی میبینید آیا باور دارید که خدا نمیخواد و یا حتی نمیتونه شما را به کار بگیره چون که شما آدم حقیری هستید پیغام کتاب داوران اینه که خدا از اینکه کارهای خارق العاده رو توسط افراد معمولی انجام بده لذت میبره هر کدوم از این داوران بسیار ساده بودند آدمهای معمولی حقیدی که خدا اونها رو برای بزرگترین و بارزترین چیزها به کار گرفت. همونطور که زندگی هر کدوم از این داوران رو یکی پس از دیگری ملاحظه می کنیم زندگی های اونها ما رو به چالش میکشه که بفهمیم خدا میتونه و لذت میبر از اینکه افراد معمولی مثل من و شما رو به کار بگیره. بذارید از نزدیک نگاهی بندازیم با تننیل شروع می کنیم یادتونه که تننیل پسر برادر کوچک کالیب بود. برلاوه اون کتاب مقدس درباره او میگه، روح خداوند کنترل او رو به دست گرفت و او اسرائیل رو اصلاح و پاکسازی کرد تا جایی که وقتی نیروهای اسرائیل رو در جنگ با دشمن رهبری می‌کرد خداوند به او کمک کرد تا اسرائیل کاملاً بر دشمن غلبه کنه اینجا جمله زیبایی هست که شما میتونید در سرتاسر سر کتاب مقدس ببینید در کنترل روح خدا بودن این رو به طرز دیگری هم گفتند پر شدن از روح به ما در عهد جدید در رسالات آموزشی فرمان داده شده که پر از روح باشیم معنی این چیه؟ بعضی ها دارند ای دارند که بهش الهیات آبکی میگن مثل اینکه زندگی شما مثل یک لیوان آب هست و روح القدس مثل یک مایه اونها بر این باورند که شما ممکنه مقدار کم و یا زیادی از روح داشته باشید مثل اینکه زندگی شما مثل یک لیوان هست و روح القدس مثل یک مایه منظور کتاب مقدس این نیست وقتی که به ما فرمان میده پر از روح باشیم. ببینید روح القدس یک شخصه و شما یا روح القدس رو درونتون دارید و یا ندارید چنین چیزی نیست که روح القدس کم یا زیادی داشته باشید مسئله این نیست که چه میزان روح القدس دارید بلکه وقتی میگن شما چه مقدار روح دارید و البته این متفاوت هست. منظور اینه که وقتی روح القدس وارد زندگیتون میشه آیا او بر شما کنترل زیادی داره یا کنترل کمی این بستگی داره به تسلیم شدن شما به او و اطاعت شما از او وقتی کسی تسلیم روح القدس میشه این به روح القدس امکان میده که اون شخص رو در کنترل بگیره پولوس عملا به ما فرمان میده که تحت تأثیر الکل مست نشویم بلکه تحت تأثیر روح القدس قرار بگیریم از روح القدس مست بشیم شخصی که مست هست زیر کنترل هست تحت تأثیر الکل به همون ترتیب برای شما این امکان هست که تحت تأثیر روح قرار بگیرید تا توسط روحی که پر از اون شدید کنترل بشید تا جایی که دیگران متوجه بشن معنی این جمله دقیقا اینه فکر میکنم خیلی ها امروزه از این واژه استفاده می میکنن گاهی مردم به من میگن او شما شبان هستید؟ آیا شما پر از روح هستید؟ جواب همیشگی من اینه نه همیشه شما چطور؟ بعضی ها اشاره میکنند که مسیحیان دو دسته اند. پر از روح و کسانی که بدون روح هستند. مسیحیانی که پر از روح هستند همیشه پر از روح هستند و دیگران هرگز از روح پر نمیشن. این تعلیم کتاب مقدسی نیست. کتاب مقدس اینطور تعلیم میده که ما میتونیم مسیحیان پر از روح باشیم. اما من فکر نمیکنم شخصی در تمام مدت پر از روح باشه. در کتاب اعمال میخونیم که پتروس پر از روح شد و در روز پنتیکاس موعظه کرد. بعدها او میگه پتروس پر از روح شد. و دوباره موعظه کرد یا پتروس پر از روح شد و این کارو یا اون کارو کرد در بین اون زمانها که پتروس پر از روح می شد آیا او تمام مدت با روح پر می شد؟ من فکر نمی کنم فکر می کنم زمانهایی بوده که روحو رو پر میکرده و یا کنترل میکرده این چیزیه که ما در مورد اوتانئل می خونیم این تنها چیزیه که در مورد او گفته شده این تنها چیزیه که از او یک ناجی ساخته روح کنترل او رو به دست گرفت دوباره شما این حقیقت رو می بینید که خدا لذت می بره از اینکه افراد خیلی معمولی رو انتخاب می کنه و توسط اونها و با اونها کارهای خارق العاده ای انجام میده. چون که روح اونها رو کنترل می کنه. شما این حقیقت رو در مورد ایهود هم می بینید. ایهوت چپ دست بود. مردم توسط ها و شاه اونها اجلون مغلوب شده بودند. در اون ایام وقتی قومی بر قوم دیگر غلبه می کرد، معمولاً بر اونها خراج میبستند ایهود سرانی رو منصوب کرده بود که به عنوان هیئتی به پایتخت معاب برند و خراج اسرائیل رو بپردازند این خارکننده ترین تجربه بود ایهود به قصر اجلون رفت و خراج رو پرداخت کتاب مقدس میگه قبل از اینکه او به این ماموریت بره خنجری به طول 45 سانتی متر ساخت و اون را به سمت راست کمرش بست چون که او چپ دست بود منظور این بود که وقتی او میخواست خنجر رو بیرون بیاره باید با دست چپش بیرون می واضحی که وقتی کسی وارد قصر میشد بازرسی بدنی می میشد. اونها ردا و لباس قشادی می پوشیدن. اونها بازرسی می میشدند که آیا سلاحی دارند یا نه. اما معمولا سمت راست اونها بازرسی نمی شد. اما چون ایهود چپ دست بود، خنجرش رو به سمت راستش بسته بود. او رو از نظر امنیتی چک کردند و ظاهرا بدون اینکه چیزی پیدا کنن، به داخل فرستادند. در راه بازگشت از ماموریت او به همراهانش گفت که بدون او برگردم. او گفت که من باید برگردم کاری هست که خدا میخواد من انجام بدم. او گفت من باید برگردم کاری هست که خدا میخواد من انجام بدم. پس دوباره به حضور این شاه رفت به حضور اجلون که کتاب مقدس میگه خیلی چاق بود وقتی به حضور شاه رسید گفت من پیغامی از طرف خدا برای تو دارم. شاه فکر کرد که او میخواد بهش هدیه و یا پول بیشتری بده او احتمالا خیلی حریص بوده پس شاه همه رو بیرون فرستاد و ایهود درست کنار شاه رفت و گفت این پیغامی از خدا هست و بعد با دست چپ نیرومندش خنجر رو بیرون کشید و شاه رو به قطر رسوند. بعد از به قطر رساندن شاه ایهود قادر بود که یک کودتا بکنه او مکاشفه ای دریافت کرده بود که معابی ها از سلطنت خل خواهند شد تنها چیزی که در مورد این مرد گفته شده به غیر از این واقعیت که او در کنترل روح بود این بود که او چپ دست بوده. این احتمالا تنها چیزی بود که ایهود برای تقدیم به خدا داشت. خدایا من چپ دست هستم. اما اگر میتونی با این حقیقت که من چپ دست هستم منو به کار بگیری پس منو با همین چپ دستی هم به کار بگیر. هر مهارتی که فکر می دارید آیا اونها رو به خدا عرضه کردید؟ وقتی موسا مأموریت یافت یادتونه که خدا از موسا پرسید، اون چیه که در دست داری؟ و موسا گفت این یک چوب دستی شبانیه. خدا گفت اون رو بر زمین بیانداز کلمه عبری وقف یا تسلیم پایین انداختن هست. هر مهارتی که دارید و یا هر عطیه خدادادی که دارید تنها کاری که خدا میخواد بکنید اینه که اونها رو به زمین بیاندازید به خدا تسلیم کنید. خدا اون رو همونطور که چپ دستی ایهود رو به کار گرفت به کار خواهد گرفت. یکی از داستان‌های محبوب من از این ناجیان داستان دبوره هست. مادر اسرائیل دبوره یک اتیه خاص روحانی داشت او نبیه بود او اتیه نبوت داشت کتاب مقدس میگه او زیر درختان نخل مینشست و نبوت میکرد و قوم اسرائیل از سراسر اسرائیل می اومدن و زیر این درخت با او مینشستند و او از خدا با اونها صحبت میکرد و یا پیغامی از خدا برای اونها میگفت روزی زیر درخت نخل به مردی به نام باراق گفت خدا شخصاً پیغامی برای تو داره و پیغام اینه. تو باید ده هزار مد رو بسیج کنی و به مقابله سی بری. سرداری که نهصد سد جنگی آهنی داره و فرمانده ی لشگر بزرگی هست. برو و به او حمله کن و اسرائیل رو از کنانیان نجات بده. حالا به نظر میرسه که دبوره باراق رو حول میداده. لگت میزده و میکشیده کشیده. باراق گفت اگر تو با من بیایی من خواهم رفت. اما اگر تو نیایی من نخواهم رفت. مردم به او نگاه میکنند و فکر میکنند چه آدم ترسویی باید بوده باشه. چه چیزی فراتر از این بود؟ ببینید چون دبوره یک نبیه بود، باراق میدونست اگر واقعا این پیغام خدا توسط او هست، پس خدا باید از آنچه که او میگفت حمایت میکرد. تمام نقشه موفقیت آمیز میشد. شاید برای آزمایش دبوره بود که ببینه آیا واقعا خودش باور میکنه که این پیغام از طرف خدا بوده؟ او گفت تو خودت بیا و با ما رژه برو دبوره موافقت کرد که این کار رو بکنه اما گفت به تو هشدار میدم که این در تاریخ ثبت خواهد شد که یک زن قوم اسرائیل رو از دست کنانیان نجات داد اما من با تو خواهم آمد او نبوت خودش رو پشتیبانی کرد اینکه چطور نبوت او انجام شد خیلی جالبه وقتی باراق بیرون رفت و مردم رو برای رفتن به نبرد تهییج می کرد ده هزار نفر شدند. در واقع چیزی بوده که دبوره به او گفته بود که واقع خواهد شد ده هزار نفر خواهد بود پس اونها در کوه تابور با سیسرا و 900 عرابه آهنی او نبرد کردند این کل داستانه داستانهای زیادی در کتاب مقدس هستند که مخصوصا در کتابهای تاریخی عهد قدیم نقل شدن. پس خدا عرابه های را منحزم کرد من مطمئنم که این مداخله خارق خدا بود خدا بر لشکر کنعانیان ترس مستولی کرد تا اینکه مردان جنگی باراق پیروز شدند سیسر در پایان جنگ فرار کرد او سعی کرد فرار کنه اما اشتباه وحشتناکی کرد که وارد سرزمین شخصی به نام هابر شد که زنش یایل نام داشت در حالی که سیسرا داشت فرار میکرد یایل از چادرش بیرون آمد و در حالی که همراه او میدوید به او گفت معلومه که خسته هستی برگرد سرورم برگرد پس او به چادر یائل رفت و گفت اگر کسی آمد و دنبال من میگشت و اونها بگو که من از راه دیگری رفتم. یائل گفت نگران چیزی نباش تو فقط دراز بکش و استراحت کن چون که خسته هستی. سیسرائو گفت من خیلی تشنه ام. پس یائل برای او کوزه ای پر از شیر آورد و به او داد. کتاب مقدس میگه او به سرعت به خواب رفت چون که از جنگ خسته بود. بعد یائل این شیرزن میخ چادر رو برداشت یک میخ بلند چادر و یک چککش و در حالی که سیسرا در خواب بود، سر او رو بر زمین میخکوب کرد. میخ چادر رو درست وسط سر او گذاشت و او رو بر زمین میخکوب کرد. بعد از این کار کتاب مقدس میگه سیسرا مرد. من فکر میکنم که یک نکته تنزی در این مسئله هست. میخکوب کردن سر به زمین تقریبا یک نوع اطمینان خاطر به بیننده میداد که این شخص یقینا مرده. سنگ قبلی در نواده هست که مربوط به زمان قدیمیه. اون جاییه که ریل‌های قطار از اون عبور می‌کنند روی سنگ قبر نوشته او اینجا خوابیده و شکی نیست که مرده چون که چرخ‌های واگن از روی سر او عبور می‌کنند سنگ قبر واقعا اونجا وجود داره و این تقریبا چیزی مشابه کاری که یائیل کرد زیباترین چیزی که در این واقعه در تاریخ یهود می‌بینیم چیزی که در کتاب مقدس از اون به نام سرود دبوره یاد کرده دبوره یک زیر آواز میزنه. من خیلی دوست دارم که موسیقی رو در کتاب مقدس مطالعه کنم. موسیقی بزرگترین معجزهی که خدا به ما داده تا اینکه چیزهای غیرقابل بیان رو بیان کنیم. زمان هایی هستند که ما احتیاج داریم چیزی ناگفتنی رو بگیم. به اعتقاد من عطیه زبانها هم چیزی مثل اینه. به اعتقاد من عطیه زبانها ها که روح القدس به بعضی از ما در خلوت دعایمون میده تا اینکه چیزهایی رو بگیم که، به غیر از اون نمیتونیم به روش دیگری بیان کنیم این تنها روش برای بیان کردن چیزهای ناگفتنی نیست روش دیگری که ما چیزهای بیان ناشدنی رو بیان می کنیم، موسیقی هست وقتی قوم خدا از دریای سرخ خور می کردن و اون نجات بزرگ رو تجربه می کردن به یک بار شروع به خواندن سرود کردن آیا وقتی کتاب خروج رو می خونید به اون توجه کردید؟ زمانهایی هست که مردم باید سرود میخونن موسیقی همینطور وقتی که قوم خدا در رنج هستند نقشی حیاتی داره. آخرین کاری که خداوند و شاگردانش قبل از اینکه او مصلوب بشه کردن اینه که اونها سرودی خوندند و بعد بیرون رفتند. زمانهایی هستند که قوم خدا در حضور خدا پرستش می کنند. من تصور می کنم زمانی که در حضور خدا هستیم بیش از هر زمان دیگری نیاز به گفتن چیزهای ناگفتنی پیدا می کنیم. به این دلیل که کتاب مقدس میگه در حضور خدا سرود بخوانید، و برای خداوند از قلبتان سرودی تازه بسرایید در مزمور صد داوود گفته آمدن به حضور خدا مثل آمدن به حضور یک پادشاه بزرگه برای آمدن به حضور یک پادشاه با گذشتن از دروازه ها و بعد از راهروهای طولانی بالاخره به حضور او می رسید به بارگاه او می رسید در مزمور صد داود داوود میگه مثل این هست که شما از دروازه های شوکگزاری شروع میکنید دروازه های شوکگزاری منتهی به راهروهای حمد میشه و دری که به حضور او باز میشه خواندن سرود هست شما سرود خوانن به حضور او وارد میشید موسیقی دری که به حضور خدا باز میشه موسیقی زیبایی در کتاب داوران هست به اون سرود دبوره میگیم اون به سرود دبوره معروف هست و این سرود عظیم دبوره در باب پنج مثال زیبایی از این واقعیت هست که وقتی قوم خدا پیروزی عظیمی کسب میکردند اونها نیاز داشتند که چیزهای بیان نکردنی رو توسط سرود بیان کنند کاربردهای زیادی هست که میتونیم در زندگی خودمون در کتاب داوران به کار بگیریم یادتون باشه که پیغام اساسی داوران ارتداد و عواقب وحشتناکی هست که به دنبال ارتداد میاد اما یادتون باشه که وقتی به کاربردهای زندگی نامه‌ای افراد می همینطور به زندگی خود داوران نگاه میکنیم بزرگترین کاربردش اینه خدا آدمهای حقیر رو میبینه. خدا فقط دوست داره آدمهای حقیر رو به کار بگیره، مثل من و شما. او دوست داره آدمهای کاملا معمولی رو برای کارهای خارق العاده به کار بگیره، چون که اونها در دسترس هستند. وقتی مردم با روح خدا کنترل میشن، مثل اوتنائل، وقتی اونها چپ دستیشون رو به خدا تقدیم میکنن و یا هر چیزی که دارن به خدا عرضه میکنن، خدا کنترل اونها رو به دست میگیره. و کارهای ای توسط اونها انجام میده شما رو با این چالش تنها میذارم آیا خودتون رو در دسترس خدا قرار دادید؟ اگر ندادید همین الان با خدا حرف بزنید و اعتراف کنید خداوندا من اون چیزی که تو میخوای باشی نیستم متشکرم که منو محبت میکنی و منو دوست داری من خودم رو به تو تقدیم میکنم تمام وجودم رو من کنترل خودم رو به روح قدوس تو میسپارم من به خاطر ایسا به کار بگیر. آمین. دانش عزیز متشکریم که عضوی از دانش کدهی کوچک کتاب مقدس هستین. میدونم دونم که خدا مایله شما رو برای انجام کارهای خارق العاده به کار بگیره. دعای ما اینه که بتونین خودتون رو در اختیار اون قرار بدین. چون که در دسترس بودن و در اختیار اون بودن بیشترین چیزیه که اون از ما میخواد. تا برنامه بعدی باشد همزمان با گام زدن در پیروزی از اون لذت ببرین. بدونین که خدا شما رو دوست داره و نقشه خارقل برای زندگی شما داره.